مصنوی معنوی مولوی برنامه نوید و هفتم. امیر کردن رسول علیه السلام جوان حوزیلی را بر ای که دران پیران و جنگ آزمودگان بودند. یک سریعه می فرستادی رسول، بحر جنگ کافر و دفع فضول، یک جوان را گزید او از حزیل میر لشکر شو سالار خیل، اصل لشکر بی گمان سرور بود، قوم بی سرور تن بی سر بود، این همه که مرده و پجمرده زان بود که ترک سرور کرده ای. از کسل و بخلو بخل و, ما و منی می کشی سر خیش را سر می کنی همچو استوره که بگریزد زبار او سر خود گیردندر در سار صاحبش در پی دوان کی کیخی رسر هر طرف گرگ است اندر قصد خر گرز چشمم این زمان غایب شوی پیشت آید هر طرف گرگ قوی استخانت را بخاید چون شکر که نبینی زندگانی را دگر آن مگیر آخر بمانی از علف آتش از بیحیزومی گردد طلف هین به مگریز از تصرف کردنم وزگرانی بار که جانت منم تو سطوری هم که نفست غالب است حکم غالب را بوود ای خود پرست خر نخواندت اسب خواندت زلجلال اسب تازی را عرب گوید تعال میر آخر بود حق را مستفی بهر استوران نفس پرجفا قل و گفت از جذب کرم تا ریاضت تان هم من رایزم نفسها را تا مروض کردم زین ستوران بس لگتها ها خوردم. هر کجا باشد ریاضت باره از لگتهایش نباشد چاره لاجرم اغلب بلا بر انبیاست که ریازت دادن خامان بلاست سکسکانید از دمم یرغا روید تا یواش و مرکب سلطان شوید قلتعالو قلتعالو گفت رب ای ستوران رمیده از ادب گر ای نبی غمگین مشو زند و بی تمکین تو پرسکین مشو گوش بعض زین تعالوها است. هر سطور راس طبل دیگر است منحظم گردند بعض زین ندا هست هر اسب طویلی و جدا منقبض گردند بعض زین قصص زون که هر مرغ جدا دارد قفص. خود ملاک نیز ناهمتا بودند زین سبب بر آسمان صف صف شدند کودکان گرچه به یک مکتب درند در سبق هر یک ز یک بالاترند مشقی و مغربی را حس هاست منصب دیدار حس چشم راست صد هزاران گوشها ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشنند باز صف گوشها را منصب در سماع جان و اخبار و نویی صد هزاران چشم را آن راه نیست هیچ چشمی از سما آگاه نیست همچنین هر حس یک یک می شمار هر یکی معذول از آن کار دیگر پنج حس ظاهر و پنج اندرون ده سفند اندر قیام از صافون هر کسی کو از صف دین سرکش است می سوی صف کان ناخش است تو ز گفتار تعالو کم مکن کیمیای بس شگرف است این سخون گرمس گردت ز گفتارت نفیر کیمیا را هیچ از وی وامگیر این زمان گربست نفس ساهرش گفته تو سودش کند در آخرش قل تعالو قل و ای غلام هین که انالله یدعو لسلام بازا از منی و از سری. سروری جو کم طلب کن سروری اعتراض کردن معترض بر رسول علیه السلام بر امیر کردن آن حزیلی چون پیامبر سروری کرد از حزیل از برای لشکر منصور خیل بلفزول از حسد طاقت نداشت، اعتراض و لا نسلم برفراشت. خلق را بنگر که چون ظلمانی هند. در متاع فانیه چون فانی هند. از تکبر جمله در تفرقه، مرده از جان، زنده در مخرقه. این عجب که جان به زندان اندر است وانگهی مفتاح زندانش به دست پای تا سر غرق سرگینان جوان میزند بر دامنش جوی روان دایمان پهلو به پهلو قرار پهلوی آرامگاه و پاشتد نور پنهان است و جست و جو گواه که از گذافه دل نمی جوید پناه گر نبودی حبس دنیا را مناس نبودی وحشت ندل جستی خلاص وحشتت همچون موکل میکشد کشد که بجو عیزال منهاج رشد هست منهاج و نهان در مکمن است یافتش رهن گذافه جستن است تفرقه جویان جمع اندر کمین تو در این طالب رخ مطلوب بین مردگان باغ برجست زبن کندهنده زندگی را فهم کن چشم این زندانیان هر دم بدر در کی بودی گر نیستی کس مجدور صد هزار آلودگان آب جو کی بودندی گر نبودی آب جو بر زمین پهلوت را آرام نیست زن که در خانه لحاف و بستر است. بی مقر گاه نباشد به قرار. بی خمارشکن نباشد این خمار. گفت، نه نه یا رسول الله مکن سرور لشکر مگر شیخ کهون یا رسول الله جوان ار شیر غیر مرد پیر سرلشکر مباد هم تو گفتستی و گفت تو گوا پیر باید پیر باید پیشوا با. یا رسول الله در این لشکر نگر هست چندین پیر و از وی پیشتر زین درخت آن برگ زردش را مبین س های پخته او را بچین چین برگهای زرد او خود کایت هست این نشان پختگی و کاملی است برگ زرد ریش و آن موی سپید بهره اقل پخته می آورد نوید برگهای های نورسیده سبز فام شد نشان آنکه آن, آن میوست وست خام برگ بیبرگی نشان آرف است زردی زر سرخرویی روی است آن که او گل است استر نوخت است او به مکتبگاه مخبر نوخت است حرف‌های خط او کجمش بود مزمن عقل است اگر تن میدود پای پیر از سرعتر چه بازماند یافت اقل او دو پر بر اوجراند. گر گرمسل خواهی به جعفر درنگر داد حق بر جای دست و پاش پر بگذر از ذر که سخن شد محتجب همچو سیما بین دلم شد مزدرب زین سبب من تیغ کردم در غلاف تا که نخواند بر خلاف زندرونم صد خموش خوشنفس دست بر لب می زند. یعنی که بس خاموشی بحر و گفتن همچو جو بر می جوید تو را جو را مجو از اشارات های دریا سر متاب ختم کن والله و عالم بالثواب همچنین پیوسته کردان به ادب پیش پیغمبر سخن زان سرد لب دست می دادش سخن او بی خبر که خبر هر هرزه بود پیش نظر این خبرها از نظر خود نایب است بهر حاضر نیست بهر غایب است هر که او اندر نظر موصول شد این خبرها پیش او معزول شد چون که با معشوق گشتی همنشین نشین دفع کن دلالگان را بعد از این هر که از تفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاله بروی سرد شد نامه خاند از پی تعلیم را حرف گوید از په تفهیم را پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل غفلت و نقصان ماست پیش بینا شد خموشی نفع تو بهر این آمد خطاب انس تو گر بفرماید بگو برگوی خوش لی کندک گو دراز اندر مکش ور بفرماید کندر کش دراز همچنین شرمین بگو با امر ساز همچنین که من در این زیبا فسون با زیا الحق حسام کنون چون که می میکنم من از رشد او به صد نو ام به گفتن میکشد ای حسام الدین زیای زلجلال چون که میبینی چه میجوی مقال این مگر باشد ز حب مشتهها، اسقنی خمرن و کلی انها بردهان توست این دم جام او گوش میگوید که قسم گوش کو قسم تو گرمی است نک گرمی و مست گفت: هر من از این افزون تر است. جواب گفتن مصطفی علیه السلام اعتراض کننده را. در حضور مصطفی قند خو، چون زهد برد آن عرب از گفت و گو آن شاه و نجم و سلطان عباس، لبگزید آن سرد دم را گفت بس دست می زد بحر من اشبردهان چند گویی پیش دانای نهان پیش بینا برده سرگین خشک که بخر این را جای ناف ماشک بر را ای گند مغز گندا زیر بینی بنهی و گویی که اوخ اخ اخ برداشتی ای گیج کاج تا که کالای بدت یابد رواج تا فریبی آن مشام پاک را آن چریده گلشن افلاک را حلم او خود را اگرچی گول ساخت، خیشتن را اندکه باید شناخت. دیگ را گرباز ماند امشب دهن، گربه را هم شرم باید داشتن. خیشتن گر خفته کرد آن خوب فر، سخت بیدار است دستارش مبر چند گویی ای لجوجه بیسفا این فسون دیو پیش مصطفا صد هزاران هلم دارند این گروه هر یکی هلم از آنها صد چکوه هلمشان بیدار را ابله کند زیرک که چشم را گمره کند حلمشان همچون شراب خوب نغز نغز نغزک بر رود بالای مغز مست را بین زان شراب پرشگفت همچو فرزین مست کش رفتن گرفت مرد برنا، زان شراب زودگیر در میان راه می افتد چپیر خواست این باده که از خم بلیست نعمه که مستی او یک است. آنکه آن اصحاب کهف از نقل و نقل سی و نه سال گم کردند عقل. زن زنان مصر جامع خوردند، دستها را شرح شرح کردند. ساهران هم سکر موسی داشتند، دار را دلدار می انگاشتند، جعفر تیار زن میبود مست، زن گراو کرد بی خود پاود است. قصه سبحان ما اعظم شعنی گفتن ابو یزید قدس الله و سرهو و اعتراض مریدان و جواب این مریشان را نه به طریق گفت زبان، بلکه از راه ایان با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که نک یزدان منم گفت مستانه ایان آن زوفنون لا الا الا انا ها فعبدون چون گذشت آن حال گفتندش سباه تو چونین گفتی و این نبود سلام گفت این بار ارکنم من مشغله کاردها بر من زنید آن آندم حلا حق منزه استن و من با تنم چون چونین گویم بباید کشتنم چون وصیت کرد آن آزاد مرد هر مورید کارد آماده کرد. مست گشت و باز از آن سغراق زفت آن وسیعتهاش از خاطر برفت. ناقل آمد، عقل او آواره شد. صبح آمد، شمع او بیچاره شد عقل چون شهنه است چون سلطان رسید شهنه بیچاره در کنج خزید. عقل سایه حق بود حق آفتاب سایه را با آفتاب او چتاب؟ چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد، وصف مردمی. هرچه گوید، آن پری گفته بود. زین سری، زان، آن سری گفته بود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار آن پری خود چون بود؟ اوی او رفته پری خود او شده تارک به الهام تازی گو شده چون به خود آید نداند یک لغت چون پری را هست این ذات و صفت پس خداوند پری و آدمی از پری کی باشدش آخر کمی، شیرگیر ار خون شیر خورد، تو بگویی او نکرد، آن باده کرد. ور سخن پردازد از ذر کهن تو بگویی باده گفتستان سخن. بادهی را می بود این شر و شور، نور حق را نیست آن فرهنگ و زور. که تو را از تو کل خالی کند، تو شوی پست او سخن عالی کند، گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت و کافر است، چون همای بیخودی پرواز کرد، آن سخن را با یزید آغاز کرد. عقل را سیل تحیر در رو بود قوی قویتر گفت که اول گفته بود نیستان در جبم الا خدا چند جویی بر زمین و بر سما آن مریدان جمله دیوانه شدند کاردها در جسم پاکش میزدند. هر یکی چون ملحدان گرد کوه کارد میزد پیر خود را بی سطو. هر که اندر شیخ تیغی می خلید بازگونه از تن خود می دارید. یک اثر نه بر تن آن زوفنون و آن مریدان خسته و غرقاب خون هر که او سوی گلویش زخم برد، حلق خود ببریده دید و زار مرد. وان که او را زخم اندر سینه زد، سینهش بشکافت و شد مرده ابد. وان که آگه بود از آن صاحب قران، دل ندادش که زند زخم گران. نیم دانش دست او را بسته کرد جان ببرد لاک خود را خسته کرد روز گشت و آن مریدان کاسته نوحه ها از خانه شان برخاسته پیش او آمد هزاران مرد و زن که دو عالم درج در یک پیرهن این تن تا گر تن مردم بودی چون تن مردم خنجر گم شدی. با خودی با بی خودی دوچار زد. با خودن در دیده خود خار زد. ای زده بر بی تو زلفقار. بر تن خود می زنی آن هوشدار دار. زن که بی خود فانی است و ایمن است تا ابد در ایمنی او ساکن است نقش او فانی و او شد آینه غیر نقش روی غیر آنجای نه گر کنی توف سوی روی خود کنی ور زنی بر آینه بر خود زنی ور ببینی روی زشت آن هم تویی، ور ببینی ایسی و مریم تویی، او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست. لب ببندر چه دست داد، دم مزن، والله و الله عالم برشاد. بر کنار بامی، ای مست مدام، پست بینشین یا فرودا و سلام، هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان. بر زمان خوش هراسان باش تو همچو گنجش خفیه کن نه تو تا نیاید برولا ناگه بلا ترس ترسان رو در آن مکمن حلا، ترس جان در وقت شادی از زوال زان کنار بام غیب است ارتحال. گر نمی بینی کنار بام راز روح می بیند که هستش احتزاز هر نکال ناگهان کان آمده است بر کنار کنگره شادی بوده است جز کنار بام خود نبود سقوط اعتبار از قوم نوح و قوم لوت